اِنَّ طریق هدایت بسم الله الرحمن الرحیم با قسمت هفدهم از مجموع گفتگوهای صوتی طریق هدایت در خدمت شما شنوندگان گرامی هستم این مجموع گفتگوهای صوتی به بررسی آیات قرآن میپردازد در این راستا برنامه هفدهم رو به موضوع ابراهیم نبی و اهل بیت او در قرآن مبین اختصاص دادم در دیانت اسلام از ابراهیم نبی اساسا به عنوان فردی مصلح و موحد یاد شده پس با این وصف نکات قابل توجهی در مورد او و خاندانش رو در قرآن کریم انتخاب کردم که براتون بازگو میکنم ابراهیم از پیروان نوح نبی است. سوره صافات آیات 79 الى 99 سلامی بر نوح در میان جهانیان ما این اینگونه نیکوکاران را پاداش میدهیم براسی او از بندگان مؤمن ما بود سپس دیگران را غرق کردیم و بیگمان ابراهیم از پیروان اوست انگاه که با دلی پاک به پیشگاه پروردگارش آمد چون به پدر و قوم خود گفت چه می پرسید؟ آیا غیر از الله خدایان دروغین را میخواهید پس گمانتان به پروردگار جهانیان چیست پس نظری به ستارگان افکند و گفت من بیمارم پس از او روی گرداندند و برگشتند پس مخفیانه به سوی خدایانش رفت و گفت چرا چیزی نمی خورید؟ شما را چه شده که سخن نمی گویید؟ پس مخفیانه با دست راست ضربتی بر سر آنها گفت و آنها را در هم شکست پس قومش شتابان به سوی او روی آوردند ابراهیم گفت آیا آنچرا می تراشید می پرسید؟ حال آنکه که الله هم شما را آفریده و هم آنچرا که می سازید گفتند برایش بنایی بسازید و او را در آتش افکنید پس طری برای نابودی او ریختند ولی ما آنها را پس و مغلوب ساختیم و ابراهیم گفت من به سوی پروردگارم روانم زودا که هدایتم کند گفتگوی ابراهیم با قومش در مورد پرستش بتها سوره شعرا آیات 69 الی دو و بر آنان خبر مهم ابراهیم را بخوان انگا که به پدر خود و قومش گفت چه میپرسید؟ گفتند بودهایی را میپرسیم و همباره ملازم عبادت آنهاییم گفت آیا وقتی آنها را میخانید از شما میشنوند؟ یا به شما سود و زیان میرسانند؟ گفتند نه بلکه پدران خود را یافتیم که چینی میکردند؟ گفت آیا درانی چه میپرسید اید تعمل کردید شما به نیاکان گذشته شما؟ آن معبودها دشمن منند مگر پروردگار جهانیان که ولی من است همان کسی که مرا آفریده و او هدایتم میکند و کسی که او مرا اطعام میکند و آبم میدهد و چون بیمار شوم او مرا شفا میدهد و کسی که مرا میمیراند و سپس زنده ام میکند و کسی که امید دارم روز جزا خطایم را بر من ببخشاید بودشکنی ابراهیم سوری انبیا آیات یک الی هفتاد و همانا ما از پیش به ابراهیم رشد کمالش را عطا کردیم و ما به شایستگی او دانا بودیم انگا که به پدر خود و قومش گفت این مجسمه هایی که شما به پرستش آنها معتکفی چیستند گفتند پدران خود را پرستش کرد آنها یافتیم گفت قطعا شما به پدرانتن در گمراهی آشکاری بودید گفتند آیا سخن حق را برای ما آورده ای یا از بازیگرانی؟ گفت آری حق را آوردم پروردگارتان پروردگار آسمان ها و زمین است که آنها را پدید آورده و من بر این واقعیت از گواهانم و در دل خود گفت به الله سوگند بعد از آنکه پشت پوش کردید و رفتید قطعا برای بطهای شما چاری خواهم کرد پس آنها را خورد کرد جز بزرگشان را تا به سوی او مراجعه کنند گفتند چه کسی با خدایان ما چنین کرده است او واقعا ستمکاران است گفتند شنید این جوانی که به او ابراهیم گفته می شود از آنها به بدی یاد می کند گفتند پس او را در برابر چشم مردم حاضر کنید تا آنها گواهی دهند گفتند ای ابراهیم آیا تو با خدایان ما چین کرده ای گفت نه بلکه این کار را بزرگ آنها کرده است اگر حرف میزنند از خودشان بپرسید پس به خیشتن بازگشتند و به یکدیگر گفتند در حقیقت شما خودتان ستمکارید سپس سرفکنده شدند و گفتند تو خوب میدانی که اینها سخن نمیگویند گفت پس آیا سوای الله چیزی را میپرسید که هیچ سود زیانی به شما نمیرساند افت بر شما و بر آنچه غیر از الله میپرسید، پس چرا نمیاندیشید گفتند اگر میخواهید کاری کنید او را بسوزانید و خدایانتان را نصد دهید. گفتیم ای آتش برای ابراهیم سرد و سلامت باش و خواستند به او نیرنگی بزنند ولی آن رازیان کارترین مردم قرار دادیم. مجادل و قلبی ابراهیم نبی بر پاتشا سوری بغره آیه 258 آیا توجه نکردی آن کس را که چون الله به او پادشاهی بخشیده بود؟ با ابراهیم در باری پروردگارش مجادله میکرد. کرد؟ انگاه که ابراهیم گفت پروردگار من همون کسی است که زنده نمی کند و می, می راند. گفت من هم زنده نمی کنم و هم می می رانم. ابراهیم گفت الله من خوشید را از خاور بر می آورد و تو آن را از باختر بر آورد. پس آن کس که گفت ورزیده بود مبهوت ماند و الله قوم ستمکار را هدایت نمی کند ابراهیم نبی در مورد چگونگی تحقق روز رستاخیز از الله متعا سوال میپرسد. سوره بقره آیه 260 و یاد کن آنگاه که ابراهیم گفت پروردگارا به من نشان ده چگونه مردگان را زنده میکنی؟ فرمود مگر ایمان نیاوردی؟ ای؟ گفت چرا ولی تا دلم آرامش یابد. فرمود پس چهار پرنده برگیر وانها را پیش خود ریز ریز گردان. سپس بر هر کوهی پاری از آنها را قرار ده آنگاه آنها را فراخوان شتابان به سوی تو می آیند و بدان که الله توانا و حکیم است گفتگوی ابراهیم نبی با پدرش در مورد سنت جاهلی بدبرسی سوره انعام آیات هفتاد چار الاشتاد سه. و یاد کن هنگامی را که ابراهیم به پدر خود آذر گفت آیا بوتان را خدایان خود میگیری من تو و قوم تو را در گمراهی آشکار میبینم و اینگونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از جمله یقین کنندگان باشد پس چون شب را بر او پرده ستاره ای دید گفت این پروردگار من است و آنگاه چون غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست ندارم و چون ماه را در حال طلودید گفت این پروردگار من است آنگاه چون ناپدید شد گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود قطعا از گروه گمراهان بودم پس چون خورشید را دیدید گفت این پروردگار من است این بزرگتر است و هنگامی که افول کرد گفت ای قوم من من از آنچه برای الله شریک میسازید بیزارم من از روی اخلاص پاک دلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمانها و زمین را پدید آورده است و من از مشرکان نیستم و قومش با او به ستیزه پرداختن گفت آیا با من در باری الله مهاجمی کنید و حالاً که او مرا هدایت کرده است و من از آنچه شریک او میسازید بیمی ندارم مگر آنکه پروردگارم چیزی بخواهد علم پروردگارم به هر چیز احاطه یافته است پس آیا متذکر نمیشوید؟ و چگونه از آنچه شریک الله می گردانید بترسم با آنکه شما خود از اینکه چیزی را شریک الله ساختید که الله دلیلی در باری آن بر شما نازل نکرده است نمی‌هراسید پس اگر میدانید کدام یک از ما دو دسته به ایمنی سزاوارتر است کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالودند آنان راست ایمانی و ایشان راه یافتگانند و آن حجت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم درجات هر کس را بخواهیم بالا میبریم زیرا پروردگار تو حکیم و داناست ابراهیم نبی یهودی و نصرانی نبود سوره آل امران آیات 67 الى 68 ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بلکه حق گرایی فرمان بردار بود و از مشرکان نبود در حقیقت نزیکترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کردند و نیز این پیغمبر به کسانی که به آیین او ایمان آوردهاند و الله سرور مؤمنان است ابراهیم از سوی الله متعال به عنوان امام کل ناس منتخب می شود سوری بغره آی 124 و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وی آن همه را به انجام رسانی الله به او فرمود من تو را امام مردم قرار دادم ابراهیم پرسید از دودمانم چطور؟ فرمود پیمان من به بی بیدادگران نمی رسد ابراهیم و فرزندش اسماعیل نبی خانی کعبه را بر فراشند سوره بقره آیات 125 الی 132 و چون خانی کعبه را برای مردم محل اجتماع و جای امنی قرار دادیم و فرمودیم در مقام ابراهیم محل صلاتی برای خود اختیار کنید و به ابراهیم و اسمائیل فرمان دادیم که خانی مرا برای تواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجود کنندگان پاکیزه کنید و چون ابراهیم گفت پروردگارا این سرزمین را شهری ام گردان و مردمش را هر کس از آنان که به الله و روز قیامت ایمان بیاورد از فراوردها روزی بخش فرمود و هر کس کفت بورزد اندکی بر خوردارش می سپس او را با خاری به سوی عذاب آتش جهنم کشانم و چه بد سرنجامی است و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل های خانی کعبه را بالا می‌بردند می‌گفتند ای پروردگار ما از ما بپذیر که در حقیقت تو شنوای دانایی پروردگارا ما را تصیم فرمان خود قرارده و از نسل ما امتی فرمان بردار خود پدیدار و آداب دینی را به ما نشان و بر ما ببخشا که توی تو بپذیر مهربان پروردگار را در میان آنان فرسادی از خودشان برانگیز تا تو تو را بر آنان بخواند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزهشان کند زیرا که تو خود شکست ناپذیر حکیمی و کیست که روی بگرداند از آیین ابراهیم جز آن کس که تبا کرده از خیشتن را و همانا برگزیدی مش در دنیا و او در آخرت از شایستگان و هنگامی که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو گفت من به پروردگار جهانیان تسلیم شدم و ابراهیم و یعقوب پسران خود را به همان آیین سفارش کردند. ای پسران من الله برای شما این دین را برگزید، پس البته نباید جز مسلمان بمیرید مناجات ابراهیم نبی سوری ابراهیم آیات 35 الى و انگاه که ابراهیم گفت پروردگارا این شهر را ایمن گردان و من و فرزندانم را از پرستش بوتن دور بدار پروردگارا آنها بسیاری از مردم را گمراه کرده اند پس هر کسی از من پیروی کرد بی گمان او از من است و هر که نافرمانی کرد همانا تو آمرزند و مهربانی پروردگارا من برخی فرزندانم را در دری در بی آب و الف در جوار خانی مکرمت تو اسکان دادم پروردگارا تا صلات را به پستل های از مردم را به سویان مایل گردان و از روزیشانده تا شک گذارند. پروردگارا بی گمان هرچی را پنهان کنیم یا آشکار کنیم تو میدانی و هیچ چیز در زمین و آسمان بر الله پنهان نمیماند. ستایش الله را که در وقت پیری اسماعیل اسحاق را به من عطا کرد. براسی پروردگار من شنوندی دعاست. پروردگارا مرا به پا دارندی کن و فرزندان مرا نیز پروردگارا و دعای مرا بپذیر پروردگارا من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در آن روز که حساب برپا می شود بیامرس فرمان الله متعال بر ابراهیم نبی مبنی بر تواف خانه کعبه سوره حج آیات 26 الاسیوم و چون برای ابراهیم جای خانه را معین کردیم به گفتیم چیزی را با من شریک مگردان. و خانه امرا برای تواف کنندگان قیام کنندگان و رکو گذاران و سجده کنندگان پاکیزه دار و در میان مردم برای حج بانک برآور تا پیاده بر هر شطر لاغری که از هر راه دوری می آیند به سوی تو روی آورند تا شاهد منافع خیش باشند و نام الله را در روزهای معلومی بر دام های زبان بسکی روزیان ها کرده است ببرند پس از آنها بخورید و به درمانده موسمند بخورانید. سپس باید آلودگی خود را بزدایند و به نزهای خود وفا کنند و بر گرد آن خانی کهن یعنی کعب تواف به جا آورند این است آنچه مقرر شده و هرکس مقررات الله را بزرگ دارد آن برای او نز پربردگارش بهتر است و برای شما دامها ها شده است مگر آنچه برای شما خوانده می شود پس از پلیدی بتها دوری کنید و از گفتار باطل اشتناب ورزید بنیانگذار دین اسلام امام ابراهیم است سوره حج آیه 78 و در راه الله چنانکه که حق کوشش در راه اوس کوشش کنید اوس که شما را برای خود برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است آیین این تن ابراهیم نیستینی بوده است او بود که قبلا شما را مسلمان نامید و در این قرآن نیز همین مطلب آمده است تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید پس سلات را بر پا دارید و زکات بدهید و به پناه الله روید او مولای شماست چه نیکو مولایی و چه نیکو یاوری مهمانان ابراهیم نبی به شارت تولد قلام علیم پسری دانا را به او میدهند سوره حجر آیات 51 الاشستم و از مهمانان ابراهیم به آن خبرده هنگامی که بر او وارد شدند و سلام گفتند ابراهیم گفت ما از شما بیمناکیم گفتند من ترس که ما تو را به پسری دانا قلام علیم مجرمی می دهیم. گفت آیا با اینکه مرا پیری فرا رسیده از بشارتم میدهید، به چه بشارت میدهید؟ گفتند ما تو را به حق بشارت میدهیم. پس از ناامیدم امیدم ما باش. گفت چه کسی جز گمراهان از رحمت پربردگارش نا امید می شود؟ سپس گفت ای ملائک دیگر کارتان چیست؟ گفتند ما به سوی گروه مجرمان فرساده شده ایم. مگر خانواده لوت که ما قطعا همه آنها را نجات می دهیم جز آتش را که مقدر کردیم او از بازماندگان در عذاب باشد و همچنین در آیات 24 الاسی و هفت سوری زاریات مهمانان ابراهیم نبی به او بشارت قلام علیم پسری دانا را به او می دهند. آیا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسید و چون بر او در آمدند پس سلام گفتند گفت سلام مردمی ناشناسید پس آهسته به سوی زنش رفت و گوسالی فربه و بریان آورد آن را به نزدیکشان برد و گفت مگر نمیخورید و در دلش از آنان احساس ترسی کرد گفتند مترس و او را به پسری دانا غلامی علی مژده دادند و زنش با فریادی از شگفتی سر رسید و بر چهره خود زد و گفت زنی پیر نازا چگونه بزاید؟ گفتند پروردگارت چه فرموده است او خود حکیم و داناست ابراهیم گفت ای فرستادگان معموریت شما چیست گفتند ما به سوی مردمی پلیدکار فرستاده شده‌ایم تا سنگ‌های از گل رس بر سر آنان فرو فرستیم که نزد پروردگارت برای مصرفان نشانگذاری شده است پس هر که از مؤمنان در آن شهرها بود بیرون بردیم ولی در آنجا جز یک خانه از اطاعت کنندگان الله بیشتر نیافتیم و در آنجا برای آنها که از عذاب پردرد درد عبرتی گذاشتیم مهمانان ابراهیم نبی به او بشارت تولد پسری به نام اصحا را میدهند. سوری خود آیات 69 الی 76 و براسی فرستادگان ما برای ابراهیم مجد آوردند. سلام گفتند پاسخ داد سلام و دیری نپایید که گوسالی بریان آورد و چون دید دست به قضا دراز نمیشود آنان را ناشناس یاد و از ایشان ترسی بر دل گرفت گفتند من ترس؟ ما به سوی قوم لوط فرستاده شدیم و زن او ایستاده بود خندید پس وی را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب مجدادیم دادیم همسر ابراهیم گفت ای وای بر من آیا فرزند آورم با آنکه من پیر زنم و این شوهرم پیرمرد است واقعا این چیز بسیار عجیبی است گفتند آیا از کار الله تعجب میکنی؟ رحمت الله و برکات او بر شما خاندان باد می گمان او ستوده بزرگوار است، پس وقتی ترس ابراهیم زایر شد و مجری فرزند دار شدن به او رسید، در باری قوم لوط با ما چون و چرا می کرد؟ زیرا ابراهیم بردبار و نرم دل و بازی عشق کننده به سوی الله بود. ای ابراهیم از این چون و چرا روی برتاب که فرمان پروردگارت آمده و برای آنان عذابی که بی بازگشت است خواهد بود؟ آزمایش ابراهیم نبی از سوی الله متعال و به مزبح برده شدن فرزند بشارت یعنی اسحاق نبی به قربانگاه سوره صافات آیات صد الی صد ای پروردگار من مرا فرزندی از شایستگان ببخش پس او را به غلام حلیم پسری بردبار بشارت دادیم و چون او همراه پدر به سن کار و کوشش رسید گفت ای پسره که من من پیوسته در خواب می بینم که تو را سر میبرم بنگر که رأی تو چیست گفت ای پدر من آنچه را دستور یافتی انجام ده اگر الله بخواهد من را از سابرن خواهی یافت پس وقتی هر دو بر این کار تسلیم شدند و پسر را به پیشانی بر خاک کند، او را ندا دادیم که ای ابراهیم رؤیای خود را حقیقت بخشیدی ما نیک و کاران را چنین پاداش می دهیم راستی که این همان آزمایش آشکار بود و او را در ازای قربانی بزرگی بازرحانی دیم و در میان آیندگان برای او آواز نیک به جای گذاشتیم بشارت داده شدن اسحاق از سوی رسولان الهی به ابراهیم نبی سه بار در قرآن مبین تکرار میشه الله متعال سه بار در هر سوره این فرزند بشارت را یک طور معرفی می نماید سوره حجر آیه 53 گفتند، مترس که ما تو را به پسری دانا بشارت میدهیم در سوری از ذاریات 28 فرموده و در دلش از آنان احساس ترسی کرد گفتند، مترس و او را به پسری دانا بشارت دادند. یعنی بشارت قلام علیم به ابراهیم نبی داده میشه و نیز در سوری صافات آیی 101 فرموده پس او را به پسری بردبار بار دادیم یعنی بشارت قلام حلیم به ابراهیم داده میشه در سوری هود آیه 71 دقیقاً برای ما مشخص میشه که فرزند بشارت همان اسحاق نبیه زن او عیسی بود خندید پس فیرا را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب بشارت دادیم یعنی بشارت اسحاق به ابراهیم نبی داده میشه پس با استناد و با استشهاد به قران کریم فرزند بشارت اسحاق نبیست و اوست که در سوری صافات به مذبح برده میشه دقیقا مطابق آیات تنزیلی مندرج در کتاب مقدس تورات و او از آزمایش الهی سربلند بیرون میاد و بشارت نبوت وی و برگزیده شدن او و سلال اش یعقوب یعنی اسرائیل و بنی اسرائیل به ابراهیم نبی داده میشه در زم فراموش نکنین که بنی اسرائیل از سلالی اسحاق نه اسماعیل نبی لیکن تکسیب کنندگان کتب و مقدس حسودان و فرومایگانی هستند که به خاندان رسالت ابراهیم نبی حسادت میورزند سوره نسا آی 54 بلکه به مردم برای انچه الله از فضل خیش به آنان عطا کرده حسادت میورزند در حقیقت ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکی بزرگ بخشیدیم ابراهیم نبی و پیروانش الگوی توحیدی ما هستند سوری ممتحن آیه چهار قطعاً برای شما در پیروی از ابراهیم و کسانی که با اویند سرمشقی نیکوس آنگاه که به قوم خود گفتند ما از شما و از آنچه به جای الله میپرسید بیزاریم به شما کوف میورزیم و میان ما و شما دشمنی و کینی همیشگی پدیدار شده تا وقتی که فقط به الله ایمان آورید جز در سخن ابراهیم که به پدر خود گفت حتما برای تو آمرزش خواهم خواست با آنکه در برابر الله اختیار چیزی را برای تو ندارم ای پروردگار ما بر تو اعتماد کردیم و به سوی تو بازگشتیم و فرجام به سوی توست تبعیت از یک تا پرسی ابراهیم نبی بر محمد نبی و پیروانش واجب شده است سوری آل عمران آیه 68 در حقیقت نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کردهاند و نیز این پیامبر و کسانی که به آیین او ایمان آوردند و الله سبر مؤمنان است در آخر از اینکه به سخنان بنده پیرامون موضوع ابراهیم نبی و اهل بیت او در قرآن گوش کردید کمال تشکر رو دارم پروردگار را در این دنیا به ما نیکی و در آخرت نیز نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش جهنم دور نگهدار